زمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام عصر روحی و ارباح العالمین لطراب مقدم حلفدا و امید و آرزوی پیروبی و تبعیت حقیقی از مکتب فاطمه زهرا سلام الله علیه این حدیثی را که مدارک و منابعش رو دیشب عرض کردم از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که در دو جهت و دو راستا ازش استفاده میکنیم. یک خود بانو اگر به این مقامات عالی رسیده و با اون درجه از ارزش و رجهان و رتبه والای عالم هستی قرار گرفته که به همین حدیث بر مبنای عبودیت خالص است این یک بحثه که در ضمن مطالبش توجه میکنیم اگر میگو این فاطمه زهرا سلام الله علیها این همه مقامات را دارند و این آثار وجودی از ایشون باقی مونده خداوند به تفیل وجود او این همه انایت میکند چرا چون عبد خالص الهی بوده است اساس عبودیت خالص این مقامات را خداوند به او داده است دوم این راه را به ما یاد میدهد من اسعد الی الله من عامه یعنی هر کس، یعنی راهی را که من فاطمه پیموده میخوام به شما یاد بدم. درست شما مثل من فاطمه نمیتوانید بشوید. همون جوری که امیرالمومنین در ای که به قسمان ابن هنیف استاندار بسره نوشتن، فرمودن لا تقدرون مثلی، نه جل مثل من شما قدرت ندارید. کار پاکان را قیاس از خود مگیر ولکن عینونی به ورعن و اجتهاد و افتن و صداد اما دنبال من حرکت کنید بیه جلو. اونایی که این راه را میشناسن و در این راه قرار میگیرند تیه مرحله و طریق میکنن به اندازه ای که طبعیت دارن و در این راه پیش پیشنیرن در اون نردبان ترقی سعود الله به انایت حبوت الهی برای اونها در پله مختلف قرار می گیرن. یکی چون سلمان و ابوذر و مقداد در چه پله ای واقع می شود؟ یا چون فزه و اسماع بنت عمیس و, و نسیبه و دیگران و سوده در چه مقاماتی قرار می یکی هم اصلا در این راستا قرار نمیگیرد تا در چه پلهای واقع شود معرفت شناخت آگاهی بینش و اطلاع در مرحله اول ارز کردم این فایده را دارد که واقعیت را کماه و واقع و حقو شناساند هر هرچه معرفت بیشتر باشه، شناخت نسبت به واقعیت و پیوردن به حقیقت یک واقعیت بیشتره. پس ما معرفتی که راجع حضرت زهرا امروز هم نیاز داریم، پله اول این است که واقعیت وجود زهرا به اندازه معرفت ما که محدود است در ان حد برای ما رو می شود. كما این که معرفت خدا هم، مگر نگفتند اول دین معرفت الله، اول قدم دین معرفت الهیه، ما معرفت الهی را به گونه ای که همه حقیقت وجود الهی برای ما کشف شود داریم، نه، ما عرفنا که حق معرفته که پیغمبر میفرماید اون چنان که سزاوار معرفت توی خداست حتی من پیغمبر ندارم ولی حالا به اندازه ای که میتوانم معرفت داشته باشم باید پیدا کنم یا نه اینکه که امیر تو نعضل بلاغه فرمودن اول دین معرفت الله اول قدم این است که باید این معرفت رو پیدا کنید و در اصول کافی اینن این روایت از امام اسکری شده است ادتو از طبق کروتللا در بعضی روایات امرالله داره در این روایت خود فللا داره فکر کنید رای خدا در مسیر خداشناسی شناسی به کار اندازید تفکر به کار ببرید خب اولین مرحله به اندازه ای که مرقت الهی داریم خدا برای ما مشخص میشه. به اندازه ای که معرفت حضرت زهرا داریم حقیقت وجود حضرت زهرا برای ما مشخص میشه به اندازه ای که معرفت داریم دو بر مبنای معرفت گرایش پیدا میکنیم که این گرایش رو در یک عنوان دلدادگی یا بر مبنای معرفت وقتی زرر و بدی یک امری رو شناختیم هنفر و انزجار و فاصله گرفتن داریم که دل است. پله دوم، پس از شناخت واقعیت به دلدادگی و دلزدگی میرسیم. مرحله سوم نشانه دلدادگی صحیح یا دلزدگی درست عمل به اختزای دلور است. دل دادم، پس دلبری دارم که دل و او دادم. حالا که دل به دلبر دادم دلبر چگونه میخواهد پس من باید اونگونه باشم دل زدهام به چی به هیچی که دل زده نمیشم به موضوعی دل زدهام این دلکندگی از X تنفر از X درست میکنه اجتناب از ایکس درست میکنه فرار از X رو برای ما مطرح میکنه ما به اندازه‌ای که زهرا سلام الله علیه ها را میشناسیم دلداده زهراییم به اندازه دلدادگی به زهرا سلام الله ها تابع زهراییم میخوایم خواهیم اون گونه که او خواسته عمل کنیم خب ایشون چی به ما یاد دادم؟ خلاصه حرف دیشب دو سه دقیقه ادامش از آیات و قرآن و روایات عنایت کنید. خداوند این انسانه را به گونه ای آفریده است طبق آیاتی که خوندم می توانند در این نردبان ترقی به سوی عالم بالا و اوج گرفتن در رتبه حقیقی انسانی تو درجات مختلفی قرار بگیرن لایزالون مختلفین که بطرک شد چه چیزی در این رتبه باعث تله های بالاتر رفتن است و از سقوط در بیچارگی ها و عالم پس نجاتمون میده آیات قرآن میفرمود رحمت خدا را الا من رحم رب این رحمت خدا که میاد خب یه سوال اینجا میپرسیم یک رحمت به درجات مختلف میاد بله به اندازه های متفاوت رحمت از خدا حبوچ میکنه برای بنده؟ بله به اقتضای اون رحمت مختلف درجات مختلف پیدا میکنیم بازم بله چرا؟ خداوند دل بخواهی به یکی مثلا رحمت صد درجه‌ای میده تو پله صدوم میذاره دل بخواهی بی حکمت، بی ادالت، بی مصلحت درجه هزارم میده رو پله هزارم میگذاره این که خدا نیست خدا حکمت خدا عظمت پروردگار بزرگتر از اینه که بی حساب و کتاب آقا قرآن گفته نوز بله کجا ذالک فضل الله یعطیه من یشم فضل خداست هر هرکی بخواد میده مثل یهد الله من یشم خب آیا ظالک فضل الله یوکی من یشا که قرآن میگوید ادامه بحث دیشب امشب از آیات شاهد بیارم قبل از توجه به آیات و روایات دیگر این من یشا یعنی چی یعنی خدا غذا غورتکیه بی حساب و کتاب فضلشو به هر کی بخواد میده این که از یک حکیم بعیده خودش هم تو قرآن اینو رد میکنه که الان میخونم آیاتشو خب با آیات دیگه قرآن بفنجید با روایات محسومین بسنجید که معناش این نیست ادام اینه ببینید ادامه بحث دیشب با آیات میتونم ثابت کنم یا نه خدا فضلش را به هر که بخواد میده خواست خدا مثل آیهی که توضیح میده ان الله لَا يُغَيِّرُ ما به حتی یغیروا ما به انفسهم ام من یشا من کسانی که در هر شرائطی از خواست و گرفتن از خدا به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها در یک عنوان درجه خلوص عبادت بندگی در هر درجه از خلوص بندگی که قرار میگیرند فضل و رحمت خدا به اقتضای اون درجه از خلوص بندگی بهشون داده میشه اون فضل و رحمت اونا رو در اون پله ها قرار میده و به اقتضای اون پله ها آثار وجودی دارن انشالله یک روایت خواهم خون که آثار وجودی عزت زهرا سلام الله علیه ها آثار انایت الهی در عالم وجوده چرا؟ چون نزدیکترین به الهه چرا زهرا نزدیکترین به الهه چون خالصترین عبد الهیه البته با معصومین کلهم نور واحد همشون مثل ولی چون مورد سخن حضرت زهراس در مورد ایشون دارم عرض میکنن من اخلس من اسعى الى الله بفرست بالا به سوی خدا یعنی از عالم پایین به بالا حرکت کن چگونه؟ یعنی چی این سعود خالص عبادته عبودیت خالص را احبت الله و علیه افضله مسلحته خب افضل مسلحت درجات عالیه است که رحمت الهیه حالا شواهدی عرض میکنم انایت بفرمید سوره ظخرف آیه سی و دو بسیار زیبا این آیه دقت بفرمید اهم یقصمون رحمت ربک آیا اونا رحمت رب رو تقسیم میکنن؟ یعنی چی؟ باید آیات قبلشو ببینید آیات قبلشو دقت کنید دوستانی هم که اهل مطالعات تفسیری به تفاصیر مراجعه بفرمایید اده ای از کفار قریش و غیر مؤمنین مکه اعتراض میکردن و مدینه که این آیه این قرآن و این معجزات چرا برای مثلا پیغمبر اسلام نازل شده چرا برای پلامی نازل نشد او که ثروتش بیشتره او که وجهش مثلا به عنوان قدرتمند قبیله بیشتره چنین چرا برای اومده و این نیومده یعنی این تفاوت درجات اعتراض بود دیگه همونگونه که ابلیس شیطان اعتراف کرد به خدا چرا آدم از من بالاتر من به او سجده کنم مثلا او به من سجده نکنه این نوع اعتراضه نسبت به این رتوه ها خدا در آیه سی و دو سوره زخروه با توجه به آیات قبل داره جواب میده اهم یک رحمت ربگ. اونا تقسیم میکنم رحمت رب را نحنو غسم نابینه ما ما یه خدا داریم این کار میکنیم ما تقسیم میکنیم به این اینو میدم به دیگری نمیدم به میدم به این نمیدم من مقامی به زهرا دادم به بقیه نمیدم من درجه ای به علی دادم به بقیه نمیدم من این معجزه و نبوت و خاتمیت رو پیغمبر اسلام دادم به بقیه نمیدم خب چرا خدای برای چی کار کردی به سلمان آوردمش تو این فله که پیغمبر لولات لما خلقت الاطلاق بفرماید سلمانون من اهل الویه سلمونم اومد جز ما شد باطی ما شد تو ردیف ما شد ام سلمه متدینه مؤمنه صادقه میگوید وقتی خمسه طیبه در زیر کسا قرار گرفتن من اومدم گوشه کسا منم میتونم بیام جزء شما باشم پیغمبر فرمود نه خودش میگه صداقت شو میگه پیغمبر فرمود نه تو جز این حریم نیستی برو کنار انته به خیر تو خیلی خوبی آقابد به خیری تو سعادتمندی تو رستگاری ولی این حریم حریم تو نیست حریم خود نگه دار پا از گلیم خود بیرون نگذار این حریم نیست که خدا به یه خاصی چرا داده؟ میگه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فل حیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات ببینید ما تقسیم میکنیم حتی معیشت را روی حسابهایی. و ما به بعضی از نظر درجه و رتبه میبریم تو درجه بالاتر که بعضی دیگر رو نسبت به این امر بالاتر نمیبریم در این آیه دو بار کلمه رحمت مطرح شد دقت کردید اول آیه احوم یقسمون رحمت ربک یعنی اونی که خدا میده اونو رحمت میگه اونا تقسیم میکنن رحمت را آخر آیه و رحمت ربک خیرون مما یجمعون چی میخوایی جمع کنی اینا میخوان جمع پول مقام شهرت عنوان ریاست میز و و. آیا و رحمت و رب خیرون من ما یجمعون اونی که میخواد از طرف خدا بیاد داده بشه به فرموده عزیز زهرا حقود الهی برای من و شما اونی که با همه این چیزهایی که اینا میخوان جمع کنن قابل مقایسه نیست خب این رحمت را که باعث درجات مختلفه میشود در این آیه بیان میفرماد که ما میدیم اینو میگه ما میدیم خب خدایا مخوام از آیات دیگه استفاده کنم چی شده که شما به بعضیا میدی به و بعضی نمیدید یک شاهد اول سوره مریم همتون افسی. کاف ها یا ذکر و رحمت رب دکر عبده و این سوره ذکر رحمت رب توس برای عبدش زکری که چه رحمتی خدا به زکری داده که در اون دوران کهولت بش فرزند داد یحیار داد اون مقاما اینا که آیه میگه سوره میگه خودتون بخونید چقدره اما منظورم اینجاست ذکر رحمت ربک ابجهو زکری یا اذناد ربهو ندا خفی وقتی که ناله زد خاص گریه کرد انابه نمود به در خانه خدا رفت از خدا درخواست کرد خدا بش داد یعنی بله رحمت خدا راجب زکریه است. ولی چرا این رحمت رو خدا به زکریا داد از نادا رب بهو ندا انخذیه. این از نادا خیلی معنا داره یعنی خودش داره میگه وقتی این رحمتی که میاد باعث درجات متفاوته میشود طرف رفته و رحمت رو خواسته یار گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه حالا من از سوره توبه آیات در این زمینه فراوانه. نمیخوام حجم آیات رو زیاد بالا ببرم توجه با آیات کم بشه فقط سه چهار رو با همدیگه هر سه چهار آیه از سوره توبه فقط جنبندی میکنم اگر عمری بود فردا هر مقامی که خدا به یک پیغمبر در قرآن به عنوان ارزش ذکر کرده میگه رحمت ما بوس شو ردیف میکنم خودتون بعد بررسی کنید میگه رحمت ما بوس این رحمت ما بوس این رحمت ما بوس که به این مقامات رسیده خب چرا این رحمتو به او دادی که به این مقام رسید میگه اومد بندگی کرد اومد ناله زد اومد خواست حضرت زهرا سلام الله علیها میگه من این راه رو رفتم خدا منو از چی بود داد میخوام شما بیاید هیف چرا مندید کجا گیر کردی چی رو میخوای منو قبول دارید تو ایام فاطمه سیاه پوشیدید گریه میکنید ازادارید اینا محبت شما رو به من میرسونه ولی اگه محبت دارید بیا دنبال من حرکت کنید من چی میخوام قرب الله؟ که از اون قربه الله بعد حرکت در جامعه مطرح بشه که انشالله عرض خواهم کرد حالا به این آیات دقت بفرمایید سوره توبه آیات بیست و بیست و یک رو اول من خیلی خلاصه عرض میکنم دقت کنید خدا چه میفرماد ارتباط میدم با آیه افتاد و یک و افتاد دو یعنی آیه بیست و بیست توبه با آیه افتاد و یک و افتاد توبه بعد دو تا سه حدیث از امامان علیهم السلام دقت بفرمایید. و آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم أعظموا درجتاً عند الله وأولئک هم الفائزون. خب اینا چه کسانی بودند؟ کسانی که ایمان بیارن، پس بعد بخوان که مؤمن بشن. هاجروا، زحمت هجرت رو قبول کنن. جاهدوا فی سبیل الله لازم شد در راه خدا مجاهدت کنن به هم و انفسهم بایی لازم مالشون رو بدن بای لازم جانشون رو بدن اعظم و عند الله اینا درجه اعظم و عالی رو در نزد خدا دارن و اولائه که همون فائزون اینها رستگارن اینها فائزن خایه رو داشته باشی؟ آیه بعدی یوبش چرا هم رب هم در رحمت من درجه فائزین و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم باید به این آیات رفت بدیم اون درجه عالیه تکاملی عالم قیامت که بشر مراحل کلاس دنیایی رو طی میکنه تا به درجه فائزین برسد ذلکه و الفوز العظیم با ایمان با هجرت با مجاهدت با مال و جان با همه اینها اعظم درجه تن اند الله قلایک هم الفائزین یبشرهم ربهم بر رحمت منحت ربشون به اینها بشارت میده رحمتی که از رب براشون هست یعنی شما به جای رسیدید که رحمت به شما میرسه و رزوان و جناتن رزوان و جنت رو دوتا آورده مگه در آیات بعد میخونم هفتاد یک هفتاد و دو جنات تجریب تحت الانهار کالدین افیه ها های بهش کاف های بهش،, بهش چنین فرماد و رزوان من الله اکبر زالکه هو الفوز العظیم پس رزوان درجه کمالیه بالاتره که رزوان چرا اسمی میبرند چون مقام؟ رضای الهیش به این جهت اون درجه رو میگن رضوان مقام رضای الهی یعنی, کی، یعنی به جایی هر هرچی خدا میخواد همونو بخواد این لازمش عبودیت خالص در این عالم هست یا نه مثلا جای استفاده کنم بعد برگردم با آیه آقا بنده دلم میخواد نعوز بالله رشوه بگیرم رضا خدا نمیخواد مقام رضا چیه؟ خدا یا دل من چیه میذارم زیر لهش می پا. لحش میکنم تو نمیخوای کش مقام رضا در این حالت، مقام رضا دلم میخواد خودنمایی کنم جلوگری کنم خودنمایی جلوه گیری شقوق مختلفی داره یه زمان شهرت پیدا کنم عنوان پیدا کنم خونمو یه جوری بکنم به رخ بکشم اتومبیل رو یه جوری بکنم به رخ بکشم گاهی قیافم و یه جور آرایش بدم بعد هجاب به رخ بکشم خود نماییه خدا میخواد؟ نه من میخوام من مقام رضا ندارم، مقام رضا چیه؟ خدای تو چجوری جوری میخوای؟ چه؟ من همون جوری میخوام مقام رضا به هر درجه ای که در این عالم راضی بودیم به رضای خدا اون درجه ارزنده قیامت که بالاترین بالاترین بالاترین و رزوانون من الله اکبر زالکه و الفوز العظیم این مقامو بهش میدن اینو میگه یو هم رب هم رحمت منه از طرف رب که مربیوست داره تربیتش میکنه میاره بالا مثل این که ای مربی معلم میگه احسن ورغت دیدم بشارت بد میدم نمره عالی را اولی رو گرفتی میگه کسانی که آمنو، هاجرو، جاهدو به انواله هم و انوالهم و انقصهم و کذا به اینا بشارت میده رحمت رب براتون هست رحمت رب میاد جن... رزوان و جنت اول رزوان رو میگه در اون آیه شریفه فتخلی فی عبادی، فتخلی جنتی اینو برای چه کسانی میگه؟ یا آیه تو هم نفس المطمئنه ارجعی الا رد که راضیه مرضیه فصحلی فی عبادی فصحلی جنتی اونجا هم اول فصحلی عبادی رو میاره عبادی یعنی کسانی که راضیان به رضای من یعنی حسین الهی رضن به رضای یعنی زهرا ان الله یغضب الغضب فاطمه و یرضى رضاها یعنی امیرالمؤمنین فسط و رب الکعبه و حکذا که مطرح میکنه فصحلی عبادی خب حالا دوستم دارید گاهی جنتم هست ولی کسی که پتخلی عبادی رو داره نعمت جنت بالا ها را دهن جنت عشاق تو سیمای توست نگو شعر درویشی خوندی حدیث ما صادق میخونم این رو که. بریم سراغ حدیث دریم سراغ تعمق در آیات قرآن کاری بکنیم که در این تلعای بالای از ارزش وجود قرار بگیریم تا انایت رحمته هست شامل آل بشه یوبشه رو هم رب هم رحمت من و و جناتن لهم فيها نعیمون مقیم حالا نعیمو بگم بکنم بحث کنم پنشش شب وقت داره این فعلا بمونه این دو آیه. بیایم آیه 71 و 72 سوره توبه آیه 71 و, و مؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعد بالمعروف یعنی عن ان المنکر یقیمون از صلاح یوتون از و یطيعون الله و رسوله مؤمن و مؤمنات کیانند امر معروف میکنند نهی از منکر میکنند صلاتو به پا میدارند زکاتشونو میدن و در یک کلمه یطيعون الله و رسوله مطیع خدا نو مطیع رسوله خدایی چی میگی چشم اینا چی هم؟ سیر همه هم الله ان الله عزيز حکیمه سین آورده به زودی بحث میکنن در تفسیر این سيرهم هم الله یعنی اگه برفرض شما بخواید حتی در این دنیا هم اون ارزش ها رو کسی نفهمه منجر به عالم آخرت بشه نسبت به حقیقت عالم وجود زود چیزی نیست یه کمی سر داشته باش یک کمی دعمل داشته باش خدایش خیر بده استادی از اساتید ما رو میپرمود علف به گوسفند میدید پوری دست نداری دنبش چقدر زیاد شد یه مقداری هم آینده نگر باشید ببینید به فرموده مولا آجان رو ببینید نه آجل رو با آجان رو آینده دور اجل با این آینده نزدیک الا ان الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا از نظر الناس الى ظاهرها واشتغلوا باجلها اذ اشتغل الناس دهاجلها لذا در این آیه میفرماید این کارا رو میکنن سیرهم هم الله ان الله عزيز وحكيم کلمه عزیز یعنی غالب شکست ناپذیر حکیم خدا هم غالب از کسی نداره آقا اگه بیشون بی خودی چیزی ندم پدرامو درمیاره و چیزی بهش میدم که صداوارش نس... عزیز حکیم مگه بی خودی کسی چیزی میده این رحمتو چرا اومده به زهرا داده به من نداده این درجه ی رحمت رو چرا به اهل داده به دیگران نداده چرا به سلمان داده حتی به ابوذر نداده اون درجه ای که سلمان داره ابوذر نداره عزیز حکیم بل المؤمنون و المؤمنات یعمرون بالمعروف یعنه هون ان المنکر یقیمون از خلاف یوتون از الله و رسوله این اطاعت میکنه حالا آیه بعدی 72 وعد الله المؤمنین و المؤمنات این سیرحمه هم وعده خلاص وعده چیه؟ جنات تجریمن تحت الانهار خالدین فیحا و مثاکن تیبه فی جنات عدن. و رزوانون من الله اکبر زالک هو الفوز العظیم درست جنات رو میگم این وره مومن مؤمنات هست ولی بالاتر از این براشون مطرحه. اون درجه بالاتر که مسئله رزوان است، این مقام رزاست لازمه مقام رزا یک توضیح مختصر بدم دو تا آیه دیگر رو مختصره چون حدیث میخوام دیگه حدیث در توجه این آیه مطرح میکنم. در این رابطه دقت بفرمایید که چگونه به ما مکتب اهل احلالبیت یاد میده. نگرشتون حتی به عبادت چه باشه؟ نگرشتون حتی به بندگی چگونه باشه؟ شما اینو همه میدونید. عبادت کنندگان سه دستن. تاجر پیشگان، بردگان، احرار. عبادت خالصی که زهرا میگه سلام الله علیه ها. یعنی چی؟ من از قران اولی شاهد براتون میارام شریف اینو تقوا دارم خوب دقت کنید تفسیرش از امام از خودم نیست یا ای الذين امنوا كتب کم الصیام كما كتب علی من قبلکم لعلکم تتقوم. روزه بگیرید بر شما مقرر شد همون طوری که بر قبلی ها مقرر شده بود باشد که شما با تقوا بشید پس روزه باعث تقوا میشه بریم سراغ قران درجات متقین در بهشت قرآن میگه مختلف حالا دقت بفرمیم سوره قمر آیه 54 سوره غمر 54 و سوره قرآنم سوره قمر آیه 54. ان المتقین فی جنات و نهر متقین در جنات و نهر یعنی جریان پربرکت خیر به سویشون این یک درجه هست جنات گفت اما سوره قمر آیه پنجا و پنج این المتقین آیه چهار فی جنات و نهر این المتقین در ادامش، فی مقعد صدقن اند ملیک مقتدر، فی مقعد صدقین اند ملیک مقتدر با فی جنات و نهر فرقشیه از امام صادق میگم اول ظاهر آیه رو ببینید یعنی یه درجه تقوا مثل ایمان یا الذين امنوا امنوا آمنو. که نما روزه گرفته به تقوای روزه رسیده ولی از روزه چی میخواسته؟ خدایا ببین من غذا نخردم قضا نخوردم و قضای بهشتی به من بده میگه باشه فی جناتن و نهر تو بهشت است و کاخ بهشت و باغ بهشت و هر چه بخوری بهشت بده این در این حده اما افی مقعد صدق اندم ملیک مقتدر متقی میتونه بیاد اونجا در این اندم ملیک مقتدر رو ترجینای لفظی بکنم گیر میکنم بعد از آیه شاهد بیارم هرون خدا میشینه پیش خدا میشینه حالا در مثل مناقشه نیست تشبیه عید نگیرید حدیث میکنم اما اینا نگیرید اشعار در بیشیه. ببینید حدیث میگم اول توضیح بدم مقدماتشو. شما فرض بفرماید یک عالم ربانی مقایسه غلط یا عالم ربانی در سطح بالای از علم معنویت اخلاق ارزش های بالای انسانی امشب منزل شام دعوت کرده دیر مخوام اطعام کنم برای عزد زهرا سلام الله همه ما هم رفتیم میگه دو دوتا تا چهار تا اتاق خوشتره همه صحبه انداختم قضاه هم پنه شما حیدم در واستادی میگن آقا قضا سرد میشه نخیر چرا؟ خودش ده دقیقه وقت بده من برم خدمتش بشینم شام سرد میشه نشه آقا شام نمیخوام حالا یه شام بیشام بخوابیم مگه میمیریم میتونم بعد برم خونه یه چیزی نون و پنیری گیرم زیاد بخورم ده دقیقه امشبی ای که در خونش رو باز کرده من پلوش بشینم این سوال مهم دارم بگه نه آقا جون شما فقط میتونی بری کنار این سفره بشین این غذا بخوری هر چی هم دلت میخواد بخوری بخور اگه چی ببری ببر یه دفعه یکی از در داری میاد تو میگه کجای آقا الان دو ساعت منتظر شماست بیا تو تو رو میخواد شما اینجا دقت کنی چه حالی بهتون دست میده من فقط این غذاه رو میخوام عنایت او برای من به اقتضای سطح من این غذا خوردن است ولی انایت او برای او به اقتضای صدر او منتظر ورودشه. صدا یه اد بهشتشون. رحمت خدا در حقشون کاخ است و باغ است. اما یک عده رحمت خدا در حقشون لغای رب است. لغای رب یعنی فتح علیفی عبادی. زهرا سلام الله علیها خالص عبادت رو مطرح میکنه حالا خودش خلوص عبادتی چی بود به کجا رسید حالا بذارید من شاهد از روایت بیارم وسائل و شیعه جلده هفت صفحه دویست و نود دو سه تا چهار تا روایت از صفحه دویست تا دویست و, و در این زمینه داره من یکیشو می کنم لسائم فرحتان سائم روزه دارنده یعنی کسی که داره عبادت میکنه روزه میگیره. این عبادت میتونه دو ساعت داشته باشه امه فرحتان یک روزه گیرنده دو تا شادی میتونه داشته باشه فرحتان انده افطاره افطار شد داره افطار میکنه خوشاله الحمدلله امروز تو نشیم بر خودمون غلبه کنیم این شکم ما رو گول نذاد روزمون رو گرفتیم حالا غذا خیلی خوشمزه از افطاره دارم لذت میبرم از اینکه غذا میخورم میگه که تو بهشتم وقتی کیلو کبابای بهشت روش میدم میگه لذت میبرم و فرحت اند اند الله فرحه دیگر شادی دیگر روزهدار دار اند لقاء الله پس میتونه از روزه به فرحه لقاء الله برسیم کسی از روزه به فرحه لقاء الله نرسه. فقط فرحتون اند افتاره باشه تو این فلم پس این درجه بالاتر نیومد چرا درجه بالاتر نیومد چون عبادتش در این حد بالاتر نیست در دعای سحر ما چی یاد دادن؟ محرم از اون داری روزه میگیری؟ روزه ایجاد تقوا میکنه تقوی یک درجهش فی جنات و نهر یک درجهش اند ملیک مقتدر در اون درجه بالت مقت... شما اگه میخوای روزه بگیری اون درجه بالاتر رو بخواد لذا تو سهر پاشو بگو اللهم من اینی که من جمال که به اجملهی و کل جماله که یعنی و کل جماله كجم. اللهم اینی اسألو که به که من جمال تو رو میخواب کله به اجمله. کل جمال خدای یعنی هم خدا قیافه زیبا داره یعنی تجلی صفات الهی من به اندازه ای که ظرفیت دارم در این پله عبودیت به جایی برسم تجلی صفات تو رو پیدا کنم به ما میکنیم رو چی کنید بیاید بالا مرحوم میرداماد اونه که میفهمن و ملان شما رو به خدای یه میخوام از میرداماد در امشب براتون بخونم میرداماد استاد ملا صدرات تعلیقیه ای داره بر اصول کافی سطحه سی و این تعلیقیه یه حدیثی رو که معروفه در باب عقل جهل کافی اولای کافیه نوعا دوستان توجه دارن این حدیث رو دیدن بحثن کردن که امام کاظم علیه السلام و سلام به جناب هشام که شاگرد زبده امام صادق بوده شابب ابن اکم و شاگرد امام کاظم هم هست داری میگه یاه شام یاه شام یاه شام راجی اونجا مفصل راجبه عقل امام صادق داره باه صحبت میکنه همون حدیث یه تیککش اینه یاه شام اندنا عبدانکم لیس للها سمن الا الجنة. فلا طبیعیوها به غیرها حالا تقاضا دارم یکم دقت کنید امشب ما این مقدار از مکتب زهرا سلام الله علیه ها این خالص عبادت رو به اندازه ای که از این آیات روایات می‌فهمیم یعنی توجه در عبودیت چی باشه و زهرا چه توجه داشت به کجا رسید با پیروش باشیم یا هشام ان ابدانکم بدنهای شما ها لیس الا ثمن الا الجنه بهایی براش نمیشه موعین کرد مگه جن... اینجا نه فرمود فرمود جنت خب جنت و رزوان در قرآن دیدیم درجات مختلفه رحمت عالیه رزوان رو باعث میشه امام کازم معصوم حجت خداس بیوده نمیزنه اینجا منظور چیه فلا طبیعوها به غیرها این بدن تو به غیر بهش نفروش اول این حدیث رو من خیلی ساده توضیح بکنم تعلیقیه میردامات رو بر این حدیث بخونم ببین کیف میکنی یا نه ملایی آیات و دیده روایات و دیده شواهد و دیده بعد اومده این حدیث رو شعر کنه ببینید چه شرحی میکنه با این شواهدی هم که براتون مشاب خوندم بعد خالص عبادتا معنا میشه اول اول دقت بفرمایید معنی ظاهری همین حدیث منهای اون دقت‌های درجات مختلفش بدن شما بهاش بهشت داره چیز دیگه نفروش یعنی خانم وقتی همین قد که بی حجاب بدنتو دیگری نشون میدی از ارزش بهش میفته جوان ای تو که به نامحرم میدوزی یا بهش نداره آقا ای زبانتی که واداره به غیبت میکنی دیگه ارزش تو بهش رفتن پیدا نمیکنه پاکی تو محیط پاک میبرم شده عذر میخوام که اینجوری مثال میزنم شده فضولات انسانی مدفوع انسانی رو تو ظرف بریزم تو مجلس بیارن او رو میسوزونن گلاب رو تو فضا میارم بهشت جای ارزش هاست بدنی که تو این وادی رفت اصلا تو راه نداره فلا طبیعوها به غیرها چیزای دیگر رو نگیر که این بدنت رو از بهشت بندازی ولی خوب بحث اینه که اینجا حضرت رزوان و نفر فوز اعظم رو مطرح نکرد میره داماد در تعلیقیه بر اصول کافی صفحه سی الجنة ثمن سمن البدن اشارتون الا ان سمن جوهر نفس المجرده و الله سبحانه فك انهو عليه السلام قال اما ان ابدانكم سمنها الجنة فلا تبيعوها و اما نفوسكم المجرده و ارواح حکم القدسیه فإنما سمنها هو الله سبحانه والفناء المطلق فی و فی مشاهدت نور وجه هل کریم فلا به غیره آدم میخواد ترواز کنه هیل که ما را از عالمان واقعیمان جدا میکنند همین می اداماد وقتی میخواد کتاب بنویسه از ترس عوام از ترس ها به رمز مینویسد که به دست همه نیفته چرا میگه نمیفهمد در اثر نفهمی ما را تكفیر میکنند اینا رو باید شیه میگه چرا امام فرمود سمنه بدن تو جنته میگه تو برو مکتب امام رو مطالعه کن میگه تو جسم داری بدن داری و روح. بدن لیاقتش که دیگه بالاتر از بهشتی نیست چون بدن ما و براش مطرحه ما بهشت ببخشید. قیامت فقط روحانی داریم معاد فقط روحانی داریم یا معاد روحانی و جسمانی با هم داریم مهاد جسمانی هم هست به قول حاجی سبزواری در منظومه من قائل معاد در روحانی قصره کل معاد جسمانی. اون کسی که قائل بشه معاد فقط روحانیه. این کوتاهی کرده. مثل کسی که قائل بشه معاد فقط جسمانیه. من قصره معاد در روحانی. من قال معاد در روحانی قصره کل قاصر قاصر جسمانی. این معاد هم روحانی هم جسمانی. در معاد جسمانی، حال برای بهشت جسمم ول چیزی مطرحه. میگه جسمت هم باید تو جنت باشه. جایی دیگه نبر ولی تو روح بالاتر از جسم داری. روح جوهره قدسیه است. جوهره قدسیه همینجوری که تو این عالم شما تو مجلسه یه عالم اومدی. مجلسه یه عالم داره شام میده، داره یه عقایدی بیان میکنه. اگر به اقتضای بدنت میخای بیای، برو سر سفره بشین. اما اگه به اختضای جامت رفتی تو اون مجلس چی میگی نمیخوام قضا رو بده به دیگری اجازه بده برم پیش خودشار کلمه ببینم صدق عوادی این بستگی داره عبادت جسمی یا عبادت روحی گاهی زبان سبحان ربی العلی و به حمده میگه ولی دل میگه پول از همه برتر است این عبادت خالص نیست گاهی رکوع جسمی است از نظر جسمی خم شده دستاشم رو زانو خیلی خشنگم داره رو کورو. میگه این پشتم به ای باشه اگه لیوان آب روش گذاشتی ننرده من اینقدر آداب جسمی رو دارم دقت میکنم ولی دل پر از تکبر و منیته. اینکه که عبادت خالص نیست من اصعد الله خالص عبادته یعنی الله جز تو هیچ! هر یه روزه جایی بودم یه که دوستش داره. جایی نشسته بودم اون آقا زنگ زد اونجا اون بنده خدا فرمودن که فلان اینجا نشسته گوشی رو بردشت گفتم دعامون کنید گفت فلانی پشت این ماشینا ها وقتا دیدی کامیون ها وانت ها اینویسن فقط خدا چقدر یه حرف قشنگی اشتبانه صبح عادت برم پشتوام تا اون کتاب رو بردارم خب نردبان گذاشتم بخیر فقط پشت بام کتاب فقط نردبان نباشه نمیشه بریم بام فقط خدا تولیای الهی نباشان به خدا نمیرسید جدا پیغمبر نیستسه و امام قرار میده اشتباه نشه خب اجازه بدید این مقدار جنبندی کنم شام شهادت امشب خانه علی چه خبره امشب مدینه چه قوایی امشب اونهایی که تو این پله‌های کمی بالا رفتن چه احساسی دارن که یک کمی بریم اونجا امشب من اول زمزمی می کردم با خودم که امشب و غلبه کنم بر نفسم همه ی شب رو فقط واقعی امشب رو براتون تعریف کنم از بعد از تا نصف شب حالا دیگه این مقدارم شد بازم فقط این یه جنبندی فشرده بکنم فعلا پس رحمت خدا حبوت اله ببنده است حبوت رحمت اله بر بنده بالا رفتن بنده است این حبوت بر مبنای حکمته این حکم درجه معرفت و دلدادگی و صباغیاته کما که در یه روزه عبادت است عبادت تاجر پیشگانه فی جنات و نهر نهر درجه بالاتر اند ملیکن مقتدر، درجه ای میشه للصائمه فرحتان فرحت عند افتاره و فرحتان عند لقاء ربه و هکذا تا میرسه به اونجا داره میگه ثمن ابدانتن جنت است ولا طبیع و لا ها به غیره اما سمن جانتون چیه؟ پدخلی فی عبادی این درجه رو وقتی کسی پیدا میکنه به اختضای این درجه خب ازنادارب بهو ذکر زک... و رحمت رب به که عبدهو زکری یا ازنادارب بهو ندا انخفی یا همین شوره بخوری خدا چه چیزایی داد به حضرت زکریا؟ یا چیزای قیرعادی که اصلا خب حالا زهرا وقتی در پیشگاه خدا عبادت خالص داره چه چیزایی خدا بهش میده؟ یه حدیث رو براتون؟ سریع برم تو وقایه این در جلد همین اثر فقط خدا جلد 43 صفحه 76 و 77 بهار مرحوم سید ابن تاووس نقل کرده از ایشون مرحومه مجلسی آورده که اهدیت الى رسول الله غدیفتن منسوجه به زهب اهداها لهو ملک الهبشه پادشاه هبشه یک قطیفه یک پارچه بافته شده یه حول ماننده زربه که تلاتش بافته بودن هدیه فرستاد برای پیغمبر فقال رسول الله پیغمبر فرمودن لطاً نهار رجلن یاحببل الله در رسولله و الله و, رسوله و, الله و رسوله. اینو میخوام به کسی بدم که خدا و رسول را دوست دارد خدا و رسولم او را دوستدارن دو طرف مهمه. او خدا و رسول رو دوست داره ولی خدا و رسولم اورو دوستدار. فقط درصاب و رسول الله اعناقهم هم الی ها جمعیت شنیدن از ها هی کشیدن بالا این پیغمبر یکی از اینا میگه تو بیا بدم به تو. فقال رسول الله اینه علی علی کجاست؟ تو شماها علی قال عمار بن یاسر عمار یاسر گفت فلما سمعت و سبت حتی عفیق علیم و وجاء علی و, و جا و دفع رسول الله فتا الیه فقام دویدم رفتم علی رو پیدا کردم آوردم تو مسجد و پیغمبر علی رو دیگه این قطیفه داد به علی فقال انسله ها فرمود علی جون مال شماست فخرج به ها الى سوق اللیل. امیرالمؤمنین رفت تو بازاری که اونجا مطرح بود فن نقذ حاصل کن سلکا اینو تار تار کرد برای ضربه داشت نخ نخش کرد تقسم حافل مهاجرین قل انصاب بین مهاجران اقصاب تقسیم کرد تیکه تیکه به هر کدوم داد چون رجع الی منزله و ما معه من ها دینارون تو خونه برگشتی یه دینار هم با خودش نبود همه رو داده بود حالا اینجا مقام زهرا سلام الله علیها خانمایی که اعرایض بنده رو میشنوید وقت نیست فقط اشاره کنم این قضیه رو من چند سال قبل در این مکان گفتم بگم خدا رحمت کنه مادر استاد جعفری رو ایشون می‌فرمودند در تبریز ما یک خانواده ای هست تبریزی بودنشون می‌فرمود در تبریز ما یک خانواده ای هست من از خودشون چنیدم اصلا اینا تو خیر بودن تو کار خیر تو عجیب موفقن من یه کمی حساس شدم خانواده همشون موفقن علت چیه تا پیرمردی مردی که مثلا پدر بزرگ این خانواده بود مثلا این قضیه ایشون که نقومی کردن بلکنی مثلا چلی سال قبل احساس شده بودن پیرمرد مرد تو چلی سال قبل پدر بزرگ این خانواده بوده گفتم شما خیلی گفت ما حد داریم از یک مادر داریم مادر من ازدواج کرد با پدرم پدرم از سرودمند های تبریز بود مثلا پرد کنی ست سال قبل تو زمستان بود عروسیشون. شوهر جوان برای اینکه خودش رو به رخ همسر بکشه توانمندی رو بگه گفت خانم حالا هندونه 100 سال قبل زمستان تو تبریز چقدر گرونه؟ بیراهی که گیر نمیاد این حالا نیست که بگیم این مسائل یه مقداری ساده شده دو تومن اون زمان داد یه هندونه زمستون خرید برای عروس خانمش آورد مثلا دو سه روز, روز بعد از ازدواجش که به رخ خانم بکشه من توانمندم حتی میتونم زمستون با این شرایط برات هندونه بخره. گو هندونه رو آورد به مادر ما. داد. مادر من گفت: "آقا خیلی متشکرم. دوستش داشتی من رفتی. تو این زمستان به این قیمت این هندونه رو تهیه کردی. ولی من یه خواهش از شما دارم. ما یه دونه هندونه زمستون نخوریم چه میشه؟ اینو ببر. به جاش این دو منو بده. مثلا تابستون یه وانه سلام حالا من الان میگم وانه مثلا چند بار اولاق هندونه میدیم می‌دیم دریش خانواده ضعیف می‌خوره." یا الان اینو پش میدی دو تو منه میاری کلی نیوجات زمستونی میخریم میدیم خانواده هایی که ببین زن زندگی فامیل رو عوض کرد یک برخورد شعی زن از این طرف میتونه چکون بده خانواده رو از اون طرف میتونه بدبخت کنه یک خانواده رو چشم همچشمی ها رو رواج بده به رخ بکشه گیر و گوش مرد بخونه تو بیارزه تر از فامیلایی تو چنینی تو چنانی ببینید علی که ید الله و این الله لسان الله حجت الله ولی الله و الله جای خودش چه دلگرمی علی نسبت به همسرش در خانه داره که میدونه عین او همسرشه دیرا دیرانم تو خونه نیاره ولی حالا این میشه خالص برای خدا بودن حالا خدا چه کار میکنه با زهرا دقت بفرمایید. رجع الى منزله وما معه من عاد دينارن یه دینار باش نبود فلما كان من قدن او رسول الله فقال يا ابو الحسن اخص امس ثلاثه آداب مسقال من ذهب فنه سلم مهاجرون بل انصار انصار نتغدي عندك قدن فقال علي عليه السلام نعم يا رسول الله پیغمبر فرمود علی جان دیروز یک پارچه در بفتی به شما دادم سه هزار مسخال داشت حالا پردا من با ادهی از مهاجر و انصال نار نهار بیارم کشه نهار به ما بدید سه هزار مسخال تلا به شما دارید علیه هم فوری عرض کرد چشل ستش بیارید خدا و پیغمبر میخواد. علیه زهرا رو به رخ بکشه میخواید این حرف رو بعده چهارده اگر ما بپهمیم احبت الله و علیه عفظلم افر اصلا خدا چه میکنه برو در خانه خدا با خدا باش مقام رضای خدا برازمت ره بشه ارزشهای های عالم بالار همینجوری مجانی هم مجانی نمیدن گاهی ها. لازم میشه در و دیوار بره باید بره گاهی لازم میشه شبا تا از گرسنگی پهلو پهلو کنه باید این کارو بکنه لازم میشه سه هزار مثال تلاها رو بده یه دینار نداشته باشه این که اون درجه رحمت رو بهشون میدن این البته حالا ببینید حالا ما کانل قدا اقبل رسول الله فلمهاجرين فالانصار حتى قر الباب فردا شود مهاجر و انصار و پیغمبر اومدان درس زدند فخرج اليهم علی اومد دردم فقط اردا من الحیا از خجالت عرق می‌ریزد فقط اردا من الحیا از حیا و شرم چی یاد دارم تو خونه پیغمبر اومده مهاجر و انصار اومده لأنه ليستی منزله قلیل ولا کسیر یکی چی کم و زیادی تو خونش نیست نه کم نه زیاد نداره نداره فدخل رسول الله و دخل المهاجرون فالانصار حتی جلسو پیغمبر وارد شد مهاجرین وارد شدن نشستن و دخل علی علا فاطمه علی مشکلگشای همه از فاطمه مشکلگشای علیه رضا امشب علی میده مشکل داره علی داره عرق میریزه فضالت میکشه میخواد نشون بده وقتی اینایی که برای خدا چه میشه غرف اندرون پیش فاطمه طرف تا اضاف خوه به جفنت مملوعه سریدا علیها عراق اراق و نیفور و منها ریح المسک از علی طرف پیش زهرادید یک بادیه بزرگ پر از تریده اصلاح گوشت و آب و غذای آماده شده یه قضای اعیانی اون روز عرب و بوی نشکی میده که این بو همه جا رو گرفته فزره و علی به یدهی علیه ها فلم یفده را حمله علی دست سدیم بادیه نمیتونه که کن بده این چیز عقیدیه. خدا همون نشون به درسته علی یدالله اینم انایت الهی فده فا و فاطمه حتی حمله ساتمه یه طرف شگره آونت ها ما آونت کرد کمک کرد تا تونستن اینو حرکت بدن حتی اخرجه ها تا از اون اندرون آوردن بیرون فوضعها ها بین یدی رسول الله گذاشتن جلو پیغمبر فدخله فدخل رسول الله على فاطمه پیغمبر رفت اندرون پیش فاطمه فقال ای بنایه دخترم انا لکه حاضر این از کجا اومد برای قالت یا ابته او و من الله از عرش الهی آوردن به من دادن گفتن علی داره عرق میریشه علی داره خجالت میکشه به قضا رو ببر به اینها بده اینالله یرزق و من یشا به غیر حساب من یشا رو اینجا معنی کنید زالک فضل الله یوتی منگشا و اون کار کرده خدام اینجوری براش انجام داده فقار رسول الله الحمدلله اندازی لم یخرجنی من از تنیا حتی رأی تو فی ما رأا زکری یا فی مریم بنت امران خدا رو من از دنیا نرفتم دیدم اون ذکر و رحمت رب بکرده زکری یا تا اونجا اون رحمتی که خدا برای زکری یا برای مریم ماهده آسمانی معین کرد بالاترشو ولی دختر من داره میکنه. پس این درجاتی که از عالم بالا این ها های ساده دنیاویشه حالا ارزش‌های های اخرویشه با توجه کرد در چه حدیث و به چگونه در اثر چیه؟ خالص عبادته خالص عبادته خالص عبادته زهرا جز خدا براش مطرح حالا جز خدا براش مطرح نیست امیر میناله. سی سال بعد از واقعه شهادت از زهراسالای آخر و عمر علی در کوپه قنبر یکی از اصحاب حضرت الان شک کردم قنبر کدومه میگه چای ابن عباس و امیر میگه آقا جون شما محاسنتون سفید شده استهبابم داره که محاسنتون رو خضاب کنن چطور شما محاسنتون رو خضاب نمی امیر پرمود که ابن عباس من ازادار پاتمه از که خزاب نمیکنه 30 سی سال گذشته. احساساتی آدم عادیه احساساتی فرد معمولیه عزاداری نشانه چیه یعنی ارزش از دست رفته سی ساله میگه از آدارم که امام زمان هزار و خورده ساله میگه یعنی ارزش را از بین بردن اهمیت رو خواستن لح کنن فضیلت رو خواستن زیر پا بگذارن لذا از امرو بعد از ظهر تو خانه علی چه گذشته با این نگرش نگاه کنیم شما یه سری با چشم دل بیایید بریم به مدینه بزن خب مثل امرو بعد از ظهری دیشب یه اشارهی کردم زهرا سلامون داری ها جهان رو به داب دیشب تا با اینجا رسندن که امیر وقتی وارد شد دم در صدا زد یا فاطمه تا یا بنت رسول الله یا امال حسن والحسین دید زهرا جواب نمیده اینجا از وقت تو پرانتز اول بگم دو نظر در میان اهل معنا وجود داره بعضیا میگن زهرا سلام الله علیه ها هنوز از دنیا نرفته بود لذا امیر وقتی اومد کنار بسترش زهرا چشم با کرد اون صحبت رو کرد و بر تموم شد بعضی میگن میگن نخی زهرا از دنیا رفته بود ولی وقتی امیرل این اینگونه با زهرا سخن گفت به ازن الله دوباره جان پیدا کرد تا با علی صحبت کنه. هیچ آدم نداره. این حالا بهاسهای خاص خودشه. حالا اینو من کاری ندارم. امیر صدا زدید زد زهرا جواب نمیده وگه علی میتونه تحمل کنه از ما میگه دیدم اومد داخل اتاق شد. این پادچهر از صورت زهرا برداشت صورتش گذاشت روی صورت, رو صورت زهرا گفت زهرا من علی هم. با من حرفی نمیزننی. اینجا بود که زهرا چشماشو باز کرد. اینجا بود که به علی گفت علی جان گریه کن. و علی شروع کرد احشیخترد و دست راست کرد عشقاش رو به بدنش مالید. حالا زهرا سلام و ها از دنیا رفت. سر و صدا تو مدینه پیچید. با امشب رو میخوام به مختصری بگم بریم جلو. سر صدا تو مدینه پیچید دختر پیغمبر خدا از دنیا رفت. آه از مردم حق باز درنگ از مردم منافق از ش... این شیادانی که تا زهرا زنده بود چگونه با او برخورد میکردن حالا جمعیت ریخت در خانه علی و زهرا ما اومدیم برای تشییع جنازه زهرا آماده بشیم یه وقت مقداد از خونه اومد بیرون جمعیت پراکنده بشید فعلا بدن زهرا رو بر نمیدارن تصور این شد که بعد از ظهر میخوان آماده میشن پرداس جمعیت رو پراکنده کرد امیر در اینجا اینن تو کتابها داره راوی میگه به خدا یادم نمیره دختر خود سال علی و زهرا رو دیدم زینات سلام علیه ها که این عباش چادر عبایی که دارن رو زمین کشیده میشد و به طرف قبر پیغمبر میدوید و داشت با پیغمبر خدا سخن میگفت من درداشتمو میگم تحویل هم میخوام بگم اونقدر باباش علی مظلومه خاله دختر چهارساله، ساله مادرش بود کرده خب تو آغوشو پدر میندازه میدونه باباش چقدر مظلومه نمیخواد درد دل, دل باباش بیشتر بشه رفته کنار قبر جدش داره شکایت امت رو از شهادت مادر و قربت و مظلومیت پدر با جدش مطرح میکنه در حیمی بود امرو از تا پاس از شب گذشته رو این بچه ها تأمل کردن سر شب اول مغرب امیر رسول سلمان ابوذر مقداد این خصیصین فرمود برید خونهاتون چاد رازش این باشه مردم تصور کنن همه رفتن امشب خبری نیست دور خونه چش وای نرسن تا یواشکی نصف شب بتونه وسیعت زهرا رو عمل کنه مگه سلمان می‌خوابه مگه ابوذر می‌خوابه مگه مقداد اینا میتونن بخوابن چرا تو خونه ی علی نیستن این به دست نیاد علی بر برید اگر نه اونا که در این حال علی رو راها نمی کنن فقط عباس اموی پیغمبر محرم از زهراز او تو خونه هست پیش علی مونده که خب علی چی علی 25 ساله ازدواج کرده الان 9 ساله میشه 34 ساله دختر 4 ساله تو خونه داره حسن حسین 7 ساله و 8 ساله داره جانش الان جنازهش وسط افتاده جان خود علی که الان اینجا میخواد دفن بشه لذا سلمان میگه من تو خونه خودم نشسته بودم زانوی غم بغل کرده بودم ابوذر میگه من تو اتاق خودم بودم حتی دوره هم, هم جمع نشده بودم که اجتماع مدینه رو متوجه کنه سلمان میگه یه وقتی در خونم در میزنه دویدم دیدم حسن از زدر ظاهری کوچلو امام مجتبای افساله سلمان بود بابام خیلی تنها سلمان میگه تا امام مجتبا فرمود یا بابام تناس من که منتظر بودم اجازه بدن آقای ماموش دبارو در آغوش گرفتم یا آقای ماموش بغل کردم تو این کوچه آب وارد خانه شدم عبی میگه حسین در خونه منو زهر ابوذر بیا بابام بخواد بدن مادرم رو گسته ده یبنه لحسانه جرک الله مقدارم رسید آقا امیر فرمودن برمودم تو موازه به حسنم باش ابوذر تو موازه به حسینم باش بچه ها آرام شاید سراشونو به دیوار گذاشتن شاید با دست جلو دهانیشونو گرفتن نمیدونن صدای گریه ها در نیاد تز موازه به زینبم باش مقداد دمه در سر بکش. سر صدایی نشه اسما آب بیار میخوام بدن زهرا مو غسل بده چشم دلوا کنیم الان تو مدینه 1400 چهارسد سال قل ای خانه گچلوی علی سلمان داره دست نوازش به سر مام مجتبا میکشه ابوزهر داره صورت امام حسین میکوسه فجه داره عشک زینب رو پاک میکنه علی بدن زهرا رو توی اتاقی گذاشته اسما در آب میاره همه خوابن علی بیدار نهاده سربر و دیوار بریزد بسوزد در غم زهرا ولی آهست آهسته آهسته بریز آب روان اسما ولی آهست آهسته آهسته در آرام یواش ناده ها یواش سر صدا یواش یه اسما میگه دیدم خدا علی صدا به نهال بلنده دوی نمجین و آقا آرام بچه رو من آرام بکنه شما دارید نیتاوی می بیکنید اصما دست از بلن بردار دستم به بلوی شکسته زهره علی بدن درار و غسلت کفن اول میکنه بچه امام شناسن زن موتی بابانی که امامشونه نفذ ها تو سینه عفض شده اما علی دیری بچه ها دارن غالب دویم میکنه بچه ها چشمه شده به بدن مادر قبل از این که بنده کمن و ببنده بر هسلام زینم زینمم سزه حافظی این بچه ها خودشون رو بدن زهران دردن علی میگه به خدا کسن دیدم زهران نره ای کشید دست باز که من یه دست بکردن ازن یه دست بکردن ازن و لا در شلعی ندا به گوشم رسید علی بچه ها رسید و یه هر کی ندارن تحمل خدا هرشیان کی ندارن تحمل خانه کوشکی علی چه تحمل داره دل علی چه تحمل داره من نمیدونم اینجا که زهرا دست و شا بود حسن رو در آغوش کرد علی با نوازش بچاره از مادر جدا کرد تزده دست نوازش به ذر زینب میکشه. ولی اصل یا هم در گمدان قطرگاه وقتی سکینه وقت این زکینه این لباش رو گذشتیم آیا حسین در آغوشش گرفت؟